مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد چهارم آمدن آن امیر نمام با سرحنگان نیم شب به گشادن آن حجره ایاز و پوستین و چارق دیدن آویخته و گمان بردن که آن مکرست و رو پوش و خانه را حفره کردن به هر ای که گمان آمد و چاه کنان آوردن و دیوارها را سوراخ کردن و چیزی نایافتن و خجل و نومید شدن. چنانکه که بدگمانان و خیالاندیشان در کار انبیا و اولیا که می گفتند که ساهرند و خیشتن ساختند و تصدر می جویند، بعد از تفحص خجل شوند و سود ندارد. آن امینان بر در حجره شدند، طالب گنج و زر و خمره بودند. قافل را برمی گشادند از هوس با 200 فرهنگ و دانش چند کس. زن که قفل صعب و پرپیچیده بود، از میان قافل ها بگزیده بود. نعز بخل سیم و مال و ذر خام از برای کتم آن سر از عوام که گروهی بر خیال بد تنند قوم دیگر نام سالوسم کنند پیش با همت بود اسرار جان از خسان محفوظتر از لعل کان زر به از جان است پیش ابلهان، زر نسار جان بود نزد شهان. میشه تا بیدند تفت از حرس زر، عقلشان میگفت نه آهستتر. حرس تازد بیهوده سوی سراب، عقل گوید نیک بین کان نیست آه. هرس غالب بود و زر چون جان شده، نعره عقل آن زمان پنهان شده. گشته ست تو هرس و غوغاهای او، گشته پنهان حکمت و ایمای او. تا که در چاه غرور اندرفتد، آنگه از حکمت ملامت بشنود، چون زبند دام باد او شکست نفس لوامه بر او یابید دست تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش کودکان را هرس لوزینه و شکر از نصیحت ها کند دو گوش کر چونکه درد دنبلش آغاز شد، در نصیحت هر دو گوشش باز شد. حجره را با هر و صدگونه حوث باز کردند آن زمان آن چند کس. اندر افتادند، از در ززدهام، همچون در دوغ گندیده، هوام. آشقانه در فتد با کر و فر، خورد امکان نیو و بسته هر دو پر. بنگریدند از یسار و از یمین، چارق بدریده بود و پوستین. باز گفتند، این مکان بینوش نیست، چارق اینجا جزپه روپوش نیست. این بیاور سیخ های تیز را امتحان کن حفره و کاریز را. هر طرف کندند و جستندان فریق، حفره ها کردند و گوهای عمیق حفرههاشان هاشان بانگ می زمان، کنده های خالیم، ای گندگان، زانسگالش، شرم هم می داشتند، کنده ها را باز میان انباشتند. به عدد لا حول در هر سینه مانده مرغ هرسشان به چینه زن زلالت های یا و تازشان حفره دیوار را در غمازشان ممکن اندای آن دیوار نه، با عیاز امکان هیچ انکار نه. گر خداعه به گناهی می دهند، حایت و عرصه گواهی می دهند. باز می گشتند سوی شهریار، پرز گرد و روی زرد و شرمسار، بازگشتن نمامان از حجره ایاز، بسوی شاه، توبرتهی و خجل، همچون بدگمانان در حق انبیا در وقت ظهور براعت و پاکی ایشان، شاه قاصد گفت هین احوال چیست که بغلتان از ذر و همیان تهیست ورنهان کردید دینار و تسو فر شادی در رخ و رخسار کو گچه پنهان بیخ هر بیخ است برگ سیما هم و هم اغزر است آنچه خورد آن بیخ از زهر و زقند نکمونادی می کند شاخ بلند. بیخ اگر بی برگ و از مایه تهیست برگ های سبز اندر شاخ چیست. بر زبان بیخ گل مهره نهد. شاخ دست و پا گواهی می‌دهد آن امینان جمله در عذر آمدند همچو سایه پیش ماه ساجد شدند عذر آن گرمی و لاف و ما و من پیش شاه رفتند با تیغ و کفن از خجالت جمله انگشتان گزان، هر یکی می گفت که شاه جهان. گر بریزی خون حلال استد، حلال، و ببخشی هست انعام و نوال. کرده ایم آنها که از ما میسزید تا چه فرمایی تو؟ ای شاه مجید گر ببخشی جرم ما ای دل فروز شب ها کرده باشد روز روز گر ببخشی یافت نومیدی گشاد ورنه صد چون ما فدای شاه باد گفت شاه نه این نواز و این گداز من نخواهم کرد هست آن عیاز حواله کردن پادشاه قبول توبه نمامان و گشایان و سزا دادن ایشان به عیاز که یعنی این جنایت بر ارزه او رفته است. این جنایت بر تن و ارز وی است زخم بر رگهای آن نیک و است گرچه نفس واحدیم از روی جان ظاهرا دورم از این سود و زیان تهمت بربنده شهر آر نیست جز مزید حلم و استظهار نیست متهم را شاه چون قارون کند بیگناه را تو نظر کن چون کند شاه را غافل مدان از کار کس مانع اظهار آن حلم و بس من هنا یشفع به پیش علم او لا ابولیوار الا حلم او آن گناه اول ز حلمش می میجهد، ورنه حیبت آن مجالش کی خونبه های جرم نفس قاتله هست بر حلمش دیت بر عاقله مست و بی خود نفس ما زانحلم بود، دیو در مستی کلاه از ویره بود. گر ساقی حلم بودی با دریز، دیو با آدم کجا کردی ستیز؟ گاه علم آدم ملایک را که بود؟ استاد علم و نقاد نقود. چون در جنت شراب حلم خورد، شد زیک بازی شیطان روی زر. آن بلادرهای تعلیم و دود، زیرک و دانا و چستش کرده بود. باز آن افیون حلم سخت او، دزد را آورد سوی رخت او. عقل آید سوی حلمش مستجیر، ساقیم تو بوده ای، ساقیم تو بوده ای ساقیم تو بوده دستم بگیر فرمودن شاه عیاز را که اختیار کن از عفو و مکافات که از عدل و لطف هرچی کنی اینجا ثباب است و در هر یکی مصلحت هاست که در عدل هزار لطف هست درج ولکم القصاص حیاتون آن کس که کراهت می دارد قصاص را در این یک حیات قاتل نظر می کند و در صد هزار حیات که معصوم و محقون خواهند شدن در حسن بیم سیاست نمی نگرده. کن میان مجرمان حکم ای ایاز ای ایاز پاک باست احتزاز گردست بارت بجوشم در عمل در کف جوشت نیابم یک دغل زمتحان شرمنده خلق بیشمار امتحانها از تو جمله شرمسار بی بیقهر است تنها علم نیست کوه و صد کوه است این خود هلم نیست گفت من دانم عطای توست این ورنه من آن چارقم وان پوستین بحر آن پیغمبر این را شرح ساخت هر که خود بشناخت یزدان را شناخت چارقت نطفست و خونت پوستین باقی ای خاجه عطای اوست این بهر آن داده است تا جویی دگر تو مگو که نیستش جز این قدر زان نماید چند سیب آن باغبان تا بدانی نخل و دخل بوستان کافه گندم زان دهد خریار را تا بداند گندم انبار را نکته زان شرح گوید اوستاد تا شناسی علم او را مستزاد وربگویی خود همینش بود و بس دورت اندازد چنان از ریش خس ای عیاز اکنون بیا و داد ده داد نادر در جهان بنیاد نه مجرمانت مستحق کشتنند وستما بر اف و حلمت میتنند تا که رحمت غالب آید یا غضب آب کوسر غالب آید یا لهب از پی مردمربایی هر دو هست شاخ حلم و خشم از عهد علاست. بهر این لفظ علاست مستبین نفی و اثبات است در لفظ قرین زن که استفهام اثباتی این لیک دروای لفظ لیسه شد دفین ترک کن تا ماند این تقریر خام کاسه خاصان منه بر خانه آم قهر و لطف چون سبا و چون وبا آن یکی آهن رو وین کهربا میکشد می کشد حق راستان را تارشد قسم باطل باطلان را می کشد میده حلوایی بود حلوه کشد میده سفرایی بود سرکا کشد فرش سوزان سردی از جالس برد فرش افسرده حرارت را خورد دوست بینی از تو رحمت می جهد بینی از تو سطوت می جهد ای ایاز این کار را زودتر گذار، زن که نوع انتقام است انتظار. تعجیل فرمودن پادشاه عیاز را که زود این حکم را به فیصل رسان و منتظر مدار و ایامون بیننا مگو که الانتظار و موت الاحمر و جواب گفتن عیاز شاه را. گفت ای شه جملگی فرمان تو راست با وجود آفتاب اختر فناست. زهره که یا اتارد یا شهاب کو برون آید پیش آفتاب. گرز دلق و پوستین کی که این تخم ملامت کشتمی. قافل کردن بر در حجره چه بود در میان صد خیالی حسود دست در کرده درون آب جو هر یکی زیشان کلوخ خشک جو پس کلوخ خشک در جو کی بود ماهی با آب آسی کی شود بر من مسکین جفا دارند زن که وفا را شرم می آید زمن. گر نبودی زحمت نامحرمی چند حرف از وفا وا گفتمی چون جهان شبهت و اشکال جوست، حرف میران ما بیرون پوست تو خود را بشکنی مغز شوی. داستان مغز نغز بشنوی جوز را در پوست ها آواز هاست مغز و روغن را خود آواز کجاست دارد آوازی نه در خورده گوش هست آوازش نهان در گوش نوش گر نخوش آوازی مغز بود جغجغ آواز قشر کش نمد جغجغ آن زان تحمل می کنی تا که خاموشانه بر مغز زنی چند گاهی بی لب و بی گوش شو وانگهان چون لب حریف نوش شو چند گفتی نظم و نصر و راز فاش خاجه یک روز امتحان کن گونگ باش حکایت در تقریر این سخن که چندین گاه گفتگو را آزمودیم، مدت صبر و خاموشی را بیازماییم. شند پختی تلخ و تیز و این یکی بار امتحان شیرین بپز آن یکی را در قیامت زنتبا در کفایت نامه اسیان سیاه سر سیاه چون نامه‌های پر پرماوسی متن نامه و حاشیه جمله فسق و معصیت بود یکسری همچو دارالحرب پر از کافری آنچنان نامه پلید پر و بال در یمین ناید در آید در شمال خود همینجا نامه خود را ببین دست چپ را شایدان یا در یمین موزه چپ کفش چپ هم در دکان آن چپ دانش پیش از امتحان چون نباشی راست میدان که چپی هست پیدا نعره شیر و کپی آنکه گل را شاهد و خوشبو کند هر چپ را راست فضل او کند هر شمال را یمین او دهد بحر را ماء معین او دهد گر چپی با حضرت او راست باش تا ببینی دست برده لطفهاش تو روا داری که این نامه مهین بگذرت از چپ در در یمین این چونین نامه که پر ظلم و جفاست کی بود خود در خور اندر دست راست